اللهم لا حول ما ياتي الله فلا مظلله ولا من يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أما بعد، على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلم واخو المسلم شکر سپاس خداوند منن را که به ما این توفیق را انایت فرمود تا در این روز مبارک برای عدای نماز اید گرده هم آییم و این دستور شرعی را اجرا نماییم از خداوند منن برای خودم توفیق گفتار نکرا خواهانم و امیدوارم که خداوند تمام حاضرین در این ایدگاه عم از خانمها و آقایون و کوچکها و بزرگ ها همه را در این روز مورد عفو و مرحمت خیش قرار داد حدیثی که قسمت از این را بنده خواندن راوی این حدیث عبدالله ابن عمر است که می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آلیه و سلام فرمودن المسلم و اخو المسلم. مسلمان برادر مسلمان است همین مطلبی که قرآن هم فرمودن اینم المؤمنون اخوه مؤمن ها با هم دیگر برادرند پس برادر برای برادر چه کاری را باید بکند و چه کاری را نباید بکند و چه حکمی نسبت به این برادر دارد بر ادامه حدیث پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید الله یا ظلمه و اسلام برادر مسلمان به برادر مسلمان ظلم نمی کند و برادر مسلمان برادرش را تسلیم به ظلم و ظالم هم نمی کند Allah. یعنی نه خودش این کار نامشروع را انجام می دهد که بیاید ظلم و تعدی بر برادر مسلمان بکند زیرا پیامبر بزرگوار اسلام می از ظلم و ظلمات و یوم القیامه ظلم یکی از علل و باعث تاریکی روز قیامت برای افراد می شود و ظلم مطلبش اینه که حق را به حقدار ندادن یا چیزی که کسی مستحقش نیست از حقدار گرفتن و به اون دادن به این میگن ظلم و ظلم در مقابل عدل و عدل یعنی انسان لذا یک برادر مسلمان هیچ وقت نمیخواد که حق برادر مسلمان را بخوره یا اینکه که حقی که مسلما مال اون, اون را بگیره و به کسی دیگه بده به ناحق این کار را مسلمان میکنه وامن مسلمان برادر مسلمان را تسلیمه به ظلم و ظالم نمیکنه یعنی اگر جایی بینه که بر برادر مسلمانش داره ظلم بیشه داره تعظیم میشه داره حقش پایمال میشه اونجا در دفاع از حق این برادر خودش کوشش را تلاش خود فرد وقتی که در مقابل حق خودش تلاش و کوشش میکنه اگر کشته هم بشه شهیده پیامبر بزرگوار اسلام می فرمد من قتل دون مال هی فواشی هر کس در دفاعی از مال خودش در دفاع از ظلم که بهش میشه در دفاعی از تعدی که بهش میشه اون دفاع بکنه و حقش را به به اون ظالم نده و حقش را بگیره در این مقابل حتی اگر جان بده اون فردش باشه نکته دیگری که پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به دو برادر مسلمان می فرماید این است من کان فی حاج یا کان الله و حاجت. هر کس تلاش و کوشش کند که مشکلات برادر دینیش را حل کند خدا هم مشکلات او را حل یعنی <تصفيق> اگر یک برادر مسلمان در دنیا مشکلاتی داره حالا هر نوع مشکلی باشه و از فردی برای این مشکل را حل کند باید کوشش بکنه بایش تا این مشکلش هست اگر فرد مسلمان با برادر مسلمانش همکاری کرد کوشش کرد مشکلاتش را حل کرد خداوند فردا مشکل را حل میکند هم دنیا و هم توی آخره. امروز اگر برادر مسلمان ما گرفتار یک مصیبت یک مشکلی شده یه نیازی را داره از دست ما برآورده میشه باید همکاری کنیم تا مشکلش حل کنیم چرا که فردا همین با ما فردا شاید ما یه جای مشکلی برخوردیم یک مصیبتی را گیر کردیم یک مسئله دامنگیر ما شد که در حل او نیاز به دیگرا داشتیم آن وقت است که خداوند همون افرادی که ما به اونها کمک کردیم حتی اون افرادی که ما به اونها کمک هم نکردیم در دل اونها میزنه که برید با این کمک کنید مشکلش ها در اخرات هم که ما مشکلات زیاد داریم گناه زیاده زیاد که تو دنیا کردیم زیاده حقهایی که از مردم خوردیم زیاده خیبات ها تهمت ها هزار و یک که شریعت گفت و نکنید کردیم اینجا هم زیاد زیاد داریم که مشکلات ما را خدا ها. و اونجا جز خدا کسی دیگر نمیشه به داد انسان برسه این دنیا شاید بعضی از مشکلات دنیوی را با پارتی و پول و رفاقت بشه حل کرد اما در آخرت چنین این چیزهایی نیست. لذا خداوند مشکلات آخرت انسان خاند نکته دیگری که پیانبر بزرگوار اسلام در این حدیث متفق علیه که در بخاری و مسلم آمد نسبت به برادر مسلمان می این است که من فر عن مسلم این الله و و هر الله عنه انه من کربات یوم القیامه هرکس سختی مشکلی از مسلمان بگوشاید گره کاری یک مسلمان را بگشاید مشکلش را حل کند خداوند در روز قیامت از مشکلات این فرد کم می کند و مشکلات شده گره مشکلات او را در قیامت می گوشاید لذا اگر ما می بینیم برادر ما یک مصیبتی افتاده این حل این مصیبت برای او مشکل یا میتواند حل کند اما با سختی یا شاید بتواند حل کند اما با راه غیر شرعي ما میتونیم این برادر مسلمان ما را یاری کنیم که با آسانی و از طریقه شرعي ن مشکلش حل کند و این گرهش را بکشه خوب همکاري کنیم خداوند در قیامت گرههای ما را می خداوند در قیامت ما خیلی های بسته داریم که بازیور دندان هم نخواهیم توانست بازتر اما در اونجا خداوند با آسانی با خداوند مشکلات را. نکته دیگری که پیانبر بزرگوار اسلام فرمودن که یک برادر با برادر مسلمان دیگر باید را آیت کند این است که و من سطره مسلمم سطره الله یوم القیام هر کس عیبی یک مسلمان را بپوشد بر عیبی یک مسلمان پرده بگذارد عیب یک مسلمان را به مردم اعلان نکند خداوند عیوبات این فرد را در قیامت پرده می کنید چیست دنیا بی ای؟ همه ما عیب داریم همه ما خطا داریم همه ما مشکل داریم همه ما گناهکاریم به می. یکی کبیره می کند یکی سقیره یکی علنی می کند یکی مخفیانه یکی در روز انجام می دهد یکی در شب یکی با تعویل انجام می دهد یکی بی تعویل ولی همه گ همه به نوعی کاریم کلو به آدم خطا انسان بی خطا وجود ندارد حتی انبیایی هم که اگر خطا و لغزشاتی داشتن من حیث بشری خدا و کرده ولی اونها هم من حیث بشری لغزشاتی رو داشتن ابا سواته الله انجا احول احما به خاطر یه لغزشی که پیانبر بزرگوار اسلام مرتکب شدن که به عبدالله بن آمه مکتب توجهی خاصی نکردن آیه نازل شد ابا س لذا هیچکس کس بی خطا هیچ کس بی نیست هیچ کس بی گناه هیچ کس معصوم نیست وقتی همه ما گناه همه ما خطا کاریم همه ما دارای اشتباهات و لغز و چرا عیبی دیگره را برمله کنیم؟ چرا ایوباتی دیگره را بر روح دیگر را بکشیم؟ اگر امروز من عیب یک برادر مسلمان یک گناهی که بر طبع بشری بنابر فریبه که از شیطان خورده بنابر هوای نفسی که بر اون غالب آمده مرتکب شده من بیام به روخش بکشم فردا خداوند آبروی مرا تو دنیا واقرت میبرم فکر نکنیم دنیا بی سر و صاحبه نه اونطوری نیست تک تک این حرکات ما سکنات ما رفتار ما, رفتار ما، گفتار ما کردار ما حفظ شده دوربین مخفی خداوند جاه داده همه چیز ما حفظ میشه این وقتی که در قیامت حتی کفار میگن مال هذا کتاب لا يقدر الصغيره ولا كبيره این چه کارنامه اعمالی که نه کوچک را گذاشته و نه بزرگ همه چیز توش نوشته شده فلان روز فلان تاریخ فلان ثانیه نرفرو فلان را ده فلان شب فلان روز چه این کاری را کردی اینا همه ها یه پوشیه برادر برعکس مثلا منم دوست دارن یه حرفی را بشنوام ولو غلط ولو نادرست ولو ناشایست دیگه شروع میکنم به آب و تاب دادنش به پروگال دادنش به بزرگ کردنش قدیم می گفتن اگر یک حدیث از مدینه برافته تا به بیاد خیلی دراز و بزرگ میشه. یعنی اضافه می کنن مردم حالا همین دوری شده اگر یک سخن کوچک از دهان یکی در بیاد دیگه بعد از یک هفته ببینید این سخن کتابی شده این یک توماری شده همم دروغ، همم غلط، همم قیبت، همم باعث این که عیب ای یک مسلمانی که حتی نداره برملا کردن. خفاقی قیامت باید اینا رو پاسخ به دلزه و میگه. هر کس عیب برادر مسلمان رو باید پوشید. ببینید. ماعظ اسلمی یک صحابی هست. زنا کرده. میاد در حضور پیامبر اعتراف رو به زنا میکنه. پیانبر تا چار بار ردش میکنه. میگه نه. شاید تو زنا؟ مگه نه یا رسول الله من زنا کردم آمدن من پاک کن مگه نه این دیوانه نیست چهار بار که میاد بس پیانبر میگه بری سانس بگونید پیانبر میشناسه این صحابه دیوانه نیست ولی برای تأکید میپرسه که شاید الان یه اتفاقی بشه افتاده متوجه نیستیون آدم همیشه دوست داشتن که آبروی یک فرد نره حتی یکی از زنانی که در زمان پیامبر زنا کرده بود و سمسار شده بود یکی از صحابه وقت سنگ میزنه خون اون به لباس این فرد می‌ریزه این فرد داره توهینش می‌کنه پیامبر می‌دونه این توبه کرده که برای هفتاد نفر کافی در بعض روایت‌ها توبه کرده که برای همه اهل مدینه کافی تو چرا بین بی دشمنا می‌دید ببینید با یک زناکار با یک خلافکار که حد اسلامی هم بهش جاری شده پیامبر چطور پرده پوشی را دوست دار؟ نیست نداره که فردا بعد از سنگ شدن این فردم، هم اعدام شدن این فردم، همه جا شروع شود و سخن از این گفته شود که فلانی دختر فلانی دیدی چنین کاری را کرد دیدی سنگش داریم دیدی کشت میشه برده میشه دفنش کردیم پیانبر برای جلوگیری نسا میگه نساکی توبهی کرده از این چه توبه بالاتر که جانش آمده در راه حد اسلامی داده گفته منه بکفید خاطر حد اسلامی حد اسلامی رو بر ما اجرا کنید این فرد میدانست که باید این با سنگه ها قدشه تا بینید نزا پرد مسئله مهم نیست امروز کوچکترین حرف که میشه تو جلسات دیگه صحبت میکنید باید به این حرف پیامبر عمل کرد که من کان یومن بالله ولی یومن آخر فلیق الخیر نولی هر حرف را میشنمیم اگر خیره خب بگیم لا. اگر خیر نیست ساکت. چی نیازی داره یک که گوشت را به در بیاوریم و گناه به خودما جان کنیم پیانبر میگه هر کس حفاظت کند بین دو فتکش یعنی زبانش را و بین دو سرینش یعنی شرمگاهش را من برای او بهش را زبانم لذا کنترل زبان قیبت از همین زبان میشه کرد امر معروف نه از منکارم از همین زبان میشه کرد تهمت هم از همین زبان میشه زد ذکر خدا را از همین زمان میشید. یا از همین زمان میشه پرده ای را از مسلمان گشود و با همین زمان شود پرده ای بر عیوبات مسلمان ها گذاشد. از این زمان خیلی کارام میشید. اصله است که ازش دونو استفاده میشید. استفاده خوب و استفاده خراب. اگر استفاده خوب کردیم ثواب برای ما اضافه میشه. اعمال ما روز به روز نیکی های ما اضافه میشه. اگر با این زبان بدی کردیم و با این زبان قیبتو، و, و حرفای ناشایست گفته‌ایم خبر روز به روز گناهان ما از <تصفيق> لذا همون میشین که پیامبر گفت که مسکین می‌شی. پیامبر یک از صحابه پرسیدن شما میدانه مسکین کیه؟ سبحان الله. آنها گفتن ملا داره همه له ولادینار. یارا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رسول الله کسی که ثمانی نداره، ریالی نداره، در نداره، دیناری نداره. ما این میگه مسکین. پیامبر گفت این مسکین نیست. این مسکین مادیه که شما تصور سرور اصل مسکین کسیه که در قیامت بیاد با نماز و روزه و زکات و حج و اعمال نیک بیاد اما فقط شط محازه اینه دوشنام داده قیبت این را کرده عیب اون را برملا کرده دروغ نسبت به فلانی گفته همه اینها چی میشه عبادات این را میگیرن میدن به اون فرد و گناهانشی میگیرن به این فرد و بعد این حاجی نمازی زکاتی را میگیرن میاندازن به جهنم این مسکینه این مسکینه این امر چیزی نداره دست خالیه. یو ملدر دار و ولادینار، اون روز دیگه در و دیناری هم دینار نداره و در و دینار ملش مفید این هم مفید نیست. اینا مسکین. لذا ما نباید با این همه زحماتی که میکشیم بیاییم خود ما را یه مسکین قیامتی یک مسکین اخروی، یک فقیر واقعی قرار بدیم که در قیامت با تمام این زحماتی که کشیدیم بر امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق گفتار نیک کردار بده باز هم خدمت شما عرض میکنم. وقتی که به عیدگاه میایم با دل صاف بیایم این مییدگاه با دل صاف بریم. امین چه معلوم که در عید دیگر خیلی از این دوستایی که اینجا نشستن، یا من که اینجا صحبت میکنم شاید دیگه همدیگه رو ندیدیم و دیدار ها قیامتیش. لا اله الا الله. هیچ کس نمی‌دونه 1 ثانیه بعد چی میشه. الله. و كل نفس ذائقه الموت و همم مردنی میدره کوم الموت و قال كونتم في بروج مشيده تو آپارتمان‌های محکم و مضبوط هم باشیم با یه راه یک اسکورت نگهبان هم باشیم. باز مرگ به صراح میاد ولی چی بدونیم که ما زنده ایم یا نه چه بدونیم الان که رفتیم به نماز جمعه برسیم یا نرسیم لذا با دل خالص و دل صاف از اینجا بریم هم دیگر را کنیم هم دیگر ببخشیم کینه برادر را در دل بزرگ نکنیم که کی کینه را هر هرچی بزرگتر کردیم خود ما شکنگه روحی میشیم به عنوان مثال اگر فردی به کسی حرفی گفته خب این فرد که حرف را شنیده دوشنامی را شنیده دیگه گفته بذار خدا ازش حسابه کتاب میگیره ازاره اینش برادر مسلمان سلمان گناهی کرده من بخشیدم خب هیچ آثر نمی کنه. ولی اگر آمد شبا اینه تو زنش آورد که فلانی به من دوشنام داره. روزش اینه تو زنش آورد که فلانی به من دوشنام داره. هر هفته و هر ماه و هر سال همین کینه بزرگ میشه هم خودش داره خودش عذاب میده. خودش داره خودش عذاب میده و برا به خودش جمع میکنه و این باعث میشه شاید فردا خدا نخواد به قتلی برسه عرب ها میگن ان نوع نار من مستغرب شرر همیشه آتش های بزرگ از یک اخته و پرشک آتش شروع یه جرقه کوچک آتش میاد دنیا را آتش همین جنگ های جهانی از کجا میاد انقدر آدمو که کشته میشن همه از یه چیزی معمولی میاد میاد بزرگ میشه بعد که بزرگ شد دیگه اون وقت شروع میشه به قتل غارت و جنات. لذا کینه را از دل بیرون کنیم همه را ماف کنیم من هم مثل ایدای سابق علان همی هم. همه برادران را مانند شوی را مادر من هیچ حق نسبت به کسی ندارم و از شما هم به عنوان یک طلبه و یک کوچک و شما به عنوان یک بزرگ من درخواست دارم که بنده هم اگر کوچه اشتباهاتی از من دیدید، لغزشاتی از من دیدید، در سخنهای بنده چیزی و کندی دیدید، در رفتار بنده چیزی دیدید، شما هم مانند یک برادر و یک پدر بنده رو و از شما هم میخوان که همدیگر رو هم ماف کنیم، رو هم ببخشیم. که فقط می‌ذید دو تا به همدیگر بغل گرفتیم ولی دلها نزدیک شده اما به هم نچسبیده، یعنی این دلی که با این دل خورده توی اینان کینه تو اینان کینه خوب این خوردن ظاهری هم فایده <تصفيق> دل هم نخوره، اما رابطه با هم داشته باشه المرء مؤمنه ها و محبت یک چیزی است که خیلی بردش امماب یاردش می کنه پیامبر می فرماید فوالذین نفسی یده لا یدخولون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا عبد لكم شیء اذا فانتم تحاببتم اقصل الله قسم به ذاتی که جان محمد به دست او وارد بهش نمیشه که مؤمن واقعی نگم الله و مؤمن واقعی واقعین نمیگن تا با یک دیگر مهر و محبت و دوستی ند الله راز میره محبت دوستی را نگویم با هم دیگر سلام علیکم الله با هم دیگر سلام علیکم در حدیثی دیگر میاد که سبعتن یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا الله حق نفر خدا زیر سایه خودش قرار میده در قیامت روزی که هیچ به بجز سایه خداوند نیست یکی از اون هفتار رجلان تحب با فی الله ایجو تمع علیه و الله. یکی از اون هفت نفر دو نفری یعنی که با هم دیگر میره محبت میکنن خاطر این میره محبت خدایی با هم جمع شدن و به خاطر این میره محبت خدایی از هم در روایت دیگری که در قیامت خدا میگه این المتحبون بجلالی ازل و فی زلی یون الازل لازل کجا آین اونهای که در دنیا به خاطر من با یک دیگر مهر می محبت میکردم امروز زیر سایه خودم قرار میدم روزی که سایه جو سایه من نیست لذا محبت چیز ارزان نیست و دشمنی چیز با ارزش نیست کینه ادات بغض چیز با ارزش نیست چیزی بی عرضش یا چیزی هست که باش ازش تنفر داشت چیزی که باهاش روز به روز دوری کرد الله. و محبت چیزیه که باید خرید با جان مال باید محبت را خرید انسان در دنیا هر چه دوست بیشتر داشته باشه زندگی راحت تری داره و هر چه دشمن کم داشته باشه زندگی راحت تره. لذا دشمن پیدا کردن هنر نیست. هنر اینه که جلب دوستا بکنیم دل افراد را به خود ما بکشونیم که تا اینکه اونها هم برادر دینی ما باشن، مهر ما را در دل داشته باشن ما. نکته سومی که خدمت شما عرض کنم، عراضی را به پایان برسنم تا این که اید به تاخیر میفته یا تقدیم میفته، پریشان بر بزرگوار اسلام در یک روایت میفرمد ایده فطر فتر روزی است که شما خوردید و دولحظه ها روزیست که قربانی کرد. این حرف را پایان بر اسلام گفتن برای اینکه می که این اتفاقکی میفته یه روز دو روز پتا پیش میشه. حالا بنا بر سیاسی گاهی این اتفاقات میفته و گاهیم بنا بر ها که که مران مدونن یا بنابر اختلافی که در میان علما و حضرات هستن که یکی اختلاف مقاله را اعتبار میکنه یکی نمیکنه این اتفاقات میفته بنابر همین پیغمبر گفتن شما پریشان نشید ایدول فطر ای که بخوردید و ایدول ازهار روزیست ای که قربانی کردید یعنی دوستانی که امروز قربانی میکنن در دل این خطشه را ندارن که ما امروز ذبیح شد یا دو روز دیر شد یا چی شد یا نشد این هیچ خطشه ای در دل نیست چون پیغمبر بزرگوهر سلام برای چنین مواقع این حرف را زدن که ایدول فطر روزیست ای که بخوردید و ایدول ازهار رو ای ذبیح قربانی کردید امیدوارن خداوند همه ما را معاف کنه و سلام علیکم یه دوست هم درخواست کمک کرده بود از برادران روشون کمک کرده یکی دوست